ای انقلابیان شرف مای و دلر ای سر و دگان حقیقت زیجان تر ای حامیان دین خدا و پیامبر در لازم گاهی دی democrat همچوشی، ای انقلابیان شرف ما یا غدالر، ای سر سفر دگان حقیقت ز جنتر، ای همیان دین خدا و پیامبر، در لازم زیدی دی هم همچوشی ای انقلابیان شرف ما یا غدالر ای سر سفر دگانی حقیقت ز جنتر ای همیان دین خدا و پیامبر در لازم زیدی دی هم همچوشی Bajkaraton qoraton bi haq bu va rohat najat baxshiday dar piruzi hukmi quranu sunnat bandabah Farmuda farmod an vazih bab یک نو بهار کفر ببیند دو سد خزان ای انقلابیان شرف ما و دلر ای سرسفر دگانی حقیقت زیجان ته ای حامیان دین خدا و پیامبر. در رزمگاه زیدی دمکرت هم چوشه ای انقلابیان شرف ما و دلیر ای سر سفر و دگانی حقیقت زیجان ته ای حامیانی دین خدا و پیامبر در رزمگاه زیدی دمکرت هم چوشه جنگو و جنبی شتان جنبی شی خداست در پیش رزم شما حکم مستفاست تا شور و عشق و سنگرتان پاک و بریاس الحق که کاروانی هدف من از شماست بباک و پرتوان و غیوران به هراست. خزد با تو فنجو با شمشیر و, و بالودار. ای انقلابیان شرف ما یا غداله. ای سرسپر دگانی حقیقت زی جنتر. ای همیار دین خدا و پیامبر. در لازم گازیدی زمکرات همچوش. ای انقلابیان شرف ما یا غداله. ای سر سفر و دگانی حقیقت زیجان ته ای حامیان دین خدا و پیامبر در رزمگاه زیدی دمکرت هم چوشه این کفار که هستی تن را ربوده دائم دا این بغصه های شما غم فوزوده در بیستری شرافت میهن غنوده آن، اخلاقی رازی سینه ای مردم زیدوده ان ناموسی مسلمین بخطر رفته در همه است در هر کجا گوش گوشنهی سخت ما تمام ای این قلابیان شرف ما یه و ای سر سفر و دگانی حقیقت زی جانت ای هامیار دین خدا و پیامبر در لازم گوش دیدمکرات هم شه ای انقلابیان شرف ما یه و ای سر سفر دگانی حقیقت زیجان ته ای حامیان دین خدا و پیامبر در رزمگاه زیدی دمکرت هم چوشیر ای خادمان دین اسلامی مجاهدین رزمندگانی راه خدا ناجیان دین شمع امیدی میهنون روی مسلمین بر جرعتون برد شما باد آفرین شب می روید سکوت زمان شکستنیست وزی و از این سعی تلاشی شما قوم رستنید این شرف ما و دلیل ای سر سفر و دگانی حقیقت زیجان ته ای حامیان دین خدا و پیانبه در رزمگاه زیدی دمکرت همچو شیر ای انقلابیان شرف ما و دلیر ای سرسفر و دگانی حقیقت زیجان ته ای حامیان دین خدا و پیامبر در رزمگاه زیدی دمکرت همچو شیر خیزه در میانه ای آشوب سر کشد به ظلمت مرده ها شب ها این قوم را زگیر دابی زلت بدر کشد فریاد حفظ دین و نامستا قمر کشد اعمالتان به نزد خدا و اندینا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 حکم خداست واجب و فرزون بردتان الحق او زبنده خود گیرد امتحان برقلع قمع دشمن دین و کنه سینان تا گوم شود فساد و شر و فتنه از جهان اون لحظه تاک دین خدا و رسول او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 در رزمگاه زیدی دمکرات هم چوشه ای این قلابیان شرف ما یه و دله ای سرسفر و دگانی حقیقت زیجان ته خامیان دین خدا و پیامبر در رزمگاه زیدید مکرت همچشه <تصفيق> قربانیانی مکتبی لعینی نفوزن کنید تن روانی سرخ و سیه و کنید از ریش باغ کفرو جنایت برون کنید و زخون کفر کفرو چمن نالکون کنید فیل جمله رازی جامعه دین بدر کنه تغی خدایی را سرین شان تستر کنه ای انقلابیان شرف ما و دلیر ای سرسفر و دگانی حقیقت زی ته ای حامیان دین خدا و پیانبر در رزمگاه زیدی دمکرت هم چوشه ای این قلابیان شرف ما و دلیر ای سرسفر و دگانی حقیقت زیجان ای حامیان دین خدا و پیامبر در رزمگاه زیدی دمکرت هم چوشه